یاد بادان که نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد بادان که چو چشمت به اتابم می کشت معجز ای سویت در لب شکرخا بود یاد بادان که سبوهی زده در مجلس اونست جز ز من و یار نبودیم و خدا با ما بود یاد بادان که رو خط شمع تراب می‌افروخت وین دل سوخته پروانه ناپروا بود یاد بادان که در آن بَز جهل خلق و ادب آنکه او خنده مستان زدی صحبا بود یاد بادان که تو یاغوط قدر خنده زدی در میان من و لعل تو اکایات ها بود. یاد بادان که نگارم تو کمر بربستی در رکاوشمهنو پیک جهان پیما بود. یاد بادان که خرابات نشین بودم و م، وان چه در مسجدم امروز کمستان جا بود یاد بادان که به اصلاح شما میشد راست نظمه هر گوهر ناسفته که حافظ را بود